و یکی صفات جلالی صفات جمال عبوست رحمت هست بخشایش هست تو فرستادن نعمت پوشیدن گناهان بندگان، بخشش بنده ها این صفات جمال خدا هست و صفات جلالی همه ناشی از قهر. عذاب و اغاب و عرض کنم که نراحتی هایی که ممکنه برای کسی که بیش بیاد اینا اصطفات جلال خود راست و, و اصطفات جمالی به رخصار و اجزای صورت تعبیر میکنه اصطفات جلالی به زلف و چین زلف و ببیندن این حرفا اینو داشته باشید برای اینکه بعدها خواهیم رسید یه جایی که کاملا نشون میده این مطلب. چه مراد از ظلف و خال اون چه سیاه هست او اینا رو ظلمت هست و صفات قهر هست و صفات قدرت هست و صفات حیمنه خداوندیست و صفات جلالیست ولی اینجا اشاره میتونه یه مسئله یه هست بسیار و سیار مهمه اینجا نمیدونم چه هم میدونید یا نه که شیعه معتقده که به هیچ نه بید بر هیچ مزید و به هیچ ترتیبی خدا رو نمیشه دیر. با این دو چشم نمیشه دید و فردوسی که شیعوده در بیش از هزار سال پیش میگه به بینندگان آخریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. این ترجمه یه آیه قرآن لا صدر فررحصار به حوال لطیق کل افتار به حوال کل کنش برای اینکه وقت زیاد نگیره زیر زدرش میزه میگه هیچ چشم او رو درک نمیکنه، او رو نمی بینه ولی او چشمها رو درک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 مردم به خصوص کسانی که کار نیک کردن با همین دو چشم خدا رو می بینن اونا به یه آیه دیگه قرآن استناد می کنن وجوه هن وجوه هن رفته ها ناظره این ناظره با ذات یعنی, یعنی با ترابط و خوش خاب رنگ, خوش خابرنگ میگه در اون روز چشم های اونا صورت های اونا سر اونها با ترابط و به خدای خودشون می نگرند. نمایه گوه حالا البته کسانی که مخالف دیدن با چشم سر هستند، اینو رد میتونن به میگن نه این نظر غیر از دیدن نمیدونن از این حرفا اون رویت کسی میگن اونایی یعنی هم که به عکس معتقلن به این که آدم با چشم سر خودها رو میبینه اون آیه اولی رو میگن نه مخصود نمیم چیه خالصه توجی ولی اصل مطلب این است که قرآن کریم کتابی است مثل مثل اغلب کتابهایی که در مدت دراز و در حقیقت و ارتباط با عالم غیب وجود آمده میشه شو از شواهد متعدد در زمینه‌های متعدد استخراج کرد از جمله همین دیوان خاجی که اخون میاد شواهد بسیار ازش استخراج میکنه که خاجا اخون درویش میاد شواهد بسیار استخراج میکنه که درویش نمیدونم ملامتی میاد استفاده میمونه این ملامتی میاد در که عرقهور بود. آدم هرهوری دهری زندگی میاد، میگه که آه این بیدین بودید همشباهید از خداحافظ بود قرآنم هم حتی در مسائل خیلی خیلی ساده ادبی به قرآن استناد میکردن من یکیشو برای میگم برای اینکه شاید برای جالب باشه طوبت این است در علوم عدوی در معانی بیان میگن که کلام دو جوره یکی کلام انشایی و یکی کلام خبری کلام خبری اون است که درش احتمال صدق و کذب بره قرار خبر یحتمل و صدق و بلکه کلام خبری مثل این که من بگم دیشب پلو خوردم این سخه از این که من آدم راستوی باشم یا نباشم که بدون این این کلام که من بگم ی این ممکن راست باشه یا ممکن باشه. در حالی که اگه بیام آقای صابی پاش بیا با این در راست نه دروغ احتمال است که کجش باشه، دارش نمیداشن. اون کلام اول دو کن خبر، و کلام دوم دو کن کلام انشاالله، که احتمال راست دروغ نداره. بعد من باید بگم خب راست خودم دورو خودم. هل <تصحیح> سم <تصحیح> می‌تونین می‌گین راست بکنو دروخت بکنو نه؟ فاید راست بکنو دروخت بکنو یه ادجای آقاینا گفتم که راست مطابقتی کلام است، با واقع و دروخت عدم مطابقتی کلام است با واقع چه هرم می‌گین بارون میاد های بارون بیاد بیرون راست بکنو های بارون نه تو اما اینجا مشکل هست او که من داشتم می بارونم می اومدی آدم تو اتاق از من پرسیدین فلانی بارون می گفتم بله ولی وقتی گفتم بله اون بارون بند اومدی من هم قصد دو گفتن نداشتم بارون می خب من من راستانی دو اینجا یا اکسشی بگیر بارون نمی آمده من اومدم تو گفتین بارون میاد گفتم بله به درو اتفاقاً وقتی من گفتم بله بیرونم بارون گرفتی من راست میگم یادم یه دسته دیگه اومدن از علمه ها گفتن که نه آه صدق با نیت گوینده است در راست گفتن و که عدم مطابقت با نیت گوینده است در راست یعنی اگر بارون بوده من میگم بارون میاد علاوه اینکه الان بارون بند اومده باشه من راست میگم. قابل عکس تو نیست واسه. یعنیpale اون که بارون بیاد من میگم بارون نمی گفتم بارون میاد علاوه ال... الانم بارون بیاد من درو. من حال من میگم گفتم اول گفتم که با واقع تصدیق کنید. یعنی وقتی میگم بارون میاد حتما بارون بیاد. بیار. اصلی دو با نیت گوینده یعنی من میام تو بارون نمیاد شما با هم میگید بارون میاد، میگم یعنی میخوام دروغ بگم همون وقتی من میگم بله بارون هم میگیره دروغ حالا من راست میگم یا دروغ میگم من قصد دروغ گفتن نداشتم حرفم راست شده اصلا این راست یا دروغ میگن نیت گوینده یعنی شما بخوای راست یا دروغ بگی نشند. حال به این مسائل کار ندارم اینو خواستم ببینید که قدیمی ها چه چیزایی رو مورد کنجکاوی دقت قرار میدهدن هر دو این دسته ها برای استحقام نظرشون از قرآن شاهد نبودن همون یکی که متوقعت با واقعه شواهد از قرآن اقام میکردن همون هایی که متوقعت با واقع باز از قرآن داریدن برحال اینجا حافظ در روزگاری بوده که مذهب اهل سنت و طرز که اشعری حاکم بوده و این که ناظر روی تو صاحب نظرانه همون اشاره اینه رجوع هنجا امعزه ناظره الارده ها ناظره اینجا هم میگوید که فقط نیکوکاران کسی که کس رخزارشون با ترابطه خویاره میبینه نه نه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 این هیچ سریع وقتی یعنی اون ساعت نظران یا میاد جزش دیگه آی نمیاد در قرآن آیهی داریم که همه افراد بشر باید از جهنم رد چند اونتوها نیکوکاران خیلی به سرعت لط میشن و گرفتار نمیشن ولی بدکاران اونجا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 همین هم همین هم همین در همین هم نیست هم یعنی نیست یعنی همه هم همین در, در معرض صفات جلال هم هست هم همین خونین من از سر هم چه عجب خجل از کرده خود پرده دری نیست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 ای بم به گفت روی به روز یعنی تو روی خودم سرش آمد و ای بم به گفت روی بر روز شکایت از چه کنه؟ خامگیز غمازهگه س همچین من خونکی تو آمد اشک عرو ها چیز کردم برضم سر اون یک کلاس گفتم ب به حالا چی چیزی گفتن روزخون قشمه چال هر مستمه ایکیمی ها روزش از سر میدید اینست که یه مطالب از مطالب دوره تکرار کنیم اون تاسمانه تا هیچ وقت عشق خون از چشم آدم میدید پنجه احسال هم گریه کنه خون از چشم میدید پس اینکه میگن عشق سوق شد یا عشق خونین به طبیبان به نمودم یا امثال اینا خیلی تو دیوان خاجه است این چیه؟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 که اگر کسی رو خدا رو اون اسم ها به خانه هر مراجع داره خدا بشمیده این اسم اعظم حالا <صح> این از, از کجا آمده دوش... او شد رو بعد معروفه معروف بود که زنون مصری اسم اعظم داره و حالا داشته یا نشته نمیدونه یه مرید بیچاره آمده بود که این اسم اعظم رو خواهش من یاد نمیدونم پول شده بود چه گرفتاری <ripping out> داشت Columbus و هر حال اسم عزم خب آقا والا بله خیلی پیغمبر من بلد نیستم اسم عظم نمیدونه این باور می‌می‌تونم چسقید که نه باید بدید خواهن نمی‌دونم گفت نه بگه پیله کرد وقتی پیله کرد زانون یه موش زنده رو گذاشت توی کاسه‌ای سرشم پوشوند گفت اینو میبری میدی به درویش مثلا نوگالیشا در پلان جا ولی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 بالکی که با نه اهل فن و اهل دانش و اونا کنجکاوی خیلی بیشتری دارن فضولی زیادتری دارن ولی اونا فضولی میکنن در چیزایی که هیچ دست ندیده بفهم خبرشن با حال اینکه آدم ویفرنگ اینی که مثلا ببینه دوشا با آقای صداقت چی خورده حالا خاص بود این نمیتونه طاقت بیاره که توی این ظرف ندونه چیه یه خورده لای سرغوشو با میرم اونم زنده بوده می میره میگه دنباش نمیشونی موشو که نمیشونی موشو رفت بعد کاثر رو به خاری خار با هزار خجلت برد اون نوگلیش ها و در کاثر واکر دید کاثر خالیه تو سبحان الله موشی گوش نمی‌توانید داشت گوش داشتن تو حافظم آمده دونی محافظت کردن دل زنافا که چشمت گوش داشتن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 یکی شنیست که در این مراحل هر کسی به یه جامزی چیزایی هست که اون مورید پایین تر طاقت شنگدنش نداره یعنی اگه مثلا یه چیزهایی که با یه موریدی در حد بالاتر میگن برای او بگم میگه اینا کافر کافبره نستن اینا بیعتقاد همه بدعتقاد همست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 <تصفيق> با که سابقه خدمت احمد امه بیشتره شما به احمد که بیشتر نظر ده؟ که الان صدا کرد یا احمد امه؟ گفت لفک گفت آفتین برزن و این اشتر را برشانه گیر و بدباه هم برزن احمد امه در جاو خوبه گیر اولا که من نمیتونم اشتر رو بلند حالا فرض بلند کنم، این راپلی پشتبون اینقدر تنگه که این شوطه اینجور رد نمیشه حالا بازم فرض کنیم، من ببنم این پشتبون، این شوطه رو زنم پشتبون، پشتبون، طاقت پشت نداری، پشت خراب میشه خوب، خوب بر صدا کرد، یا احمده که گفت لبه خوب آسدین برزن، و هستور برگیر، و بعد ما هم بر پوری اوها داشت، کرب گروش، کم شطور برداری بره گفتیدین؟ با چون چرا میکنه با من می من نمیفهم که یه آدمیزاد ها زورش نمیرسید رو روور یا این بهبلکن اون فقط میفهم که تنگه من نمیفهم ولی این وقتی که آمده و خودش رو به دست پیر سپرده برای تربیتش دیگه چونو چرا در حرفش نمیکنه همین که خارج میگه به می سجاده رنگین کن گرد پیر ماام بودگرد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 و از او گشت سر دار بلند جور ماشین بود که اسرار رو بیدام کرد گفت انالحق یعنی من دیگه نیستم حسین ابن ممصوری در میون نیست هرچه هست اوست گفتن این ادعای خدایی میکنی دعوی خدایی گرفتن کشت این برای این بوده که این سر رو نباید پاش یا جای دیگری میگه گر خود رقیب چند است اولا رقیب یادتون باشه که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 به کسی است که همپای محشوق حالا چه پسر نوخفت چه،, چه دختر زیبا میکردن برای اینکه بیگانگان و عواظل و اینو عذیتش نکنن. او رو میدن رقیب همین دلیل هم هست که حافظ از نخوت رقیب خیلی میناله. رقیب در گذر بیش از این مکن نخوت که ساکنان در دوست خاک ساران.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 یه زن خوشگل یا یه زن خوشگلی خوش دیگه رقیبشوش و بد افلاقشو مربوط نیست شو. رقیب به مراقب حافظ میگه گر خود رقیب هم از اسرار از او به توکشان کان سوخ سربریده بند زبان ندارد میگه زبانش پند زبونش نداره سرشو برید. سرش هم وقتی ما خواستن کاموش کنن میچیدن برای اینکه دوک نکنه. آن شوخ سربوری به بند زبان نداره بنابراین مساله سر رو مسئله راز و مساله نگه دادی راز در تسبب هر راز هم اون راز هم ارزش بوده بسیار بسیار حایز اهم و دا تو سوال دارید؟ بابا این تعدادهی رو کنیش تو وقت و توی این تعدادهی بساره کنیگی رو توی این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 گردی میگه من با اشکم تمام راهگزارا رو سیل خیز کردم یعنی عداغه رو تخفیف شد اینقدر یعنی این آب پاشیدم اینکه اگر نسیم از اینجا رد شد هیچ گردی به دامنتون تن آب به دامن ننشین نزد نسیم تو را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 با سبا گفت و شنیدم سهری نیست که نیست گفت و شنیدی اینجا یعنی بوگومگو یعنی من با سبا گرشداری دارم بوگومگو دارم چرا؟ اولا دم میدون که من این نفس و وزیدن بادو خیلی تشبیح کرده حافظ به نفس نفس باد سبا مشک پشان خواهد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 مثلا در شورا از اینجا بگیم بازی که از شر رو خجاید باید مزخرفی باشه باید سام باشه باید و عکسش از غرب شر اسمش دبوره باید اسمش دبوره و بایدی که از شمال به جمعید شمال اسمش به جز سبا و شمال هم نمیشه ناسد کس باید مال خود خوشت. شمال باد شمال خبر باش ای نسیم شمال که به ما میرسد زمان رسیم پس سبا شد باد از شهر بکر تا قدم از شام سر زلف تو هر جا نزند زلف رو هم باید بگم که با گیسو فرب دارد زلف اون قسمتی از موز که در قسمت قدامی چهره در این کنارها ها و روی پیشانی میگذاشتن و ییسو قسمت متعلقه پشتی ازداره زولف محبوطه به روبست یک کلمه هم بریم زولفین به این کلمه رو گره کنم بعد زولف ساختن این زولفینه اولا زولفین نیست مدتی خیال بیکردم که این زولفینه و این اشتبالات مرون قزدینی کرده که پکنک زولفینه یعنی دو زولف یعنی این دو طرف نیست اولا این زولفینه زولفین و زورفین هر دوش معنی حلقه است اون چفتای قدیم در اگر دیده باشین یک چفت بود یک حلقه بود که میکردم تو بعد یک سیخی میخی میکردم توش اون حلقه رو میگن زولفین، زولفین و زولفین از خیلی قدیم هم این بوده است اون حلقهی که رو درده میگهتم زولفین در یه شعری داره بابایی نمیگن رو یکی به نظرم بیه از شعرهای خیلی متقدم میگه به آب گرم در منده از پایم در زور زل... زول در دار انگوشت آذار گورم یعنی کامو هندو نکیل آذار پیدوس اسم شخص این آذار شخصی و دینام آذاریت می آهی این آذاریت می آهی از, از معاصران یعقوب و عمر پردازان پسران بیش از سه پلی مار دیدیم زیرکی که رو او به دیوانگی زده بوده برای اینکه بسیاری حرفا رو بخونه بزنه. و اغلب هم در مواضع حساس اونجایی که باید ترفیری بزنه میزد. ولی منقول است که این اثر ابن یحیی را چه دستی کرده بود که حمزه در تو جوشی میاد این موندو. هر چمایی بیشش بیرون نشده بود و بعدم کندوکاف بکنن باد میکنه انگشت خون میاد اونجا بیشترو موندو خلاصه با مکافات و بدبختی رو مثلا صابون بزنم من نمیدونم فاره بکنم و بسیار رو یا نمیدونم گوشات کنم همون هر و حجات هر و نمیدونم به یه ترتیبی با بدبختی بعد از ساعتها گرفتادی نه انگوش دینیم چند دوند. بعد میگه که دوباره یا فرانگوش کردون تو گفتن <کتنقل> مرد که چه همچی کردی گفتن هیچی میخواستم بینم که هر گشات گوشات تو نه. با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 وگر نه هیچ دیگر نیست که از سر کوی تو بهره مند نباشد مانازم طالع شوریده برنجم ورنه بهره مند از سر کوی تو دیگری نیست که کسی نه حو از سر کوی تو بهره مندم این پیداست که این کسی به معشوقش هم چیزی نمیگه که امکان نداره کسی برای معشوقش بگه که هیچ کسی هیچ کسی نیست از سر کوی تو بهره مند نباشه جز من تحلیل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 این دوتا مثل هم نوشته میشه منطقه یه نقطه فرق داره گاهی نقطه هم نداره مثلا فرض کنید که ارق و عرق اگه باشه دیگه نقطه هم فرم داره این برها این نوشنید تجمیز فرق انگاه اقسام تجمیز داریم این تجمیز فرق این یکی دو این که نوش به معنی شیرین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 یه شب یه خسروه میگی بریم حلواتی میره بو موزن که اسفحان یه زنی هست شکرنام که این خیلی رو ششت خوب فراهم میکنه و میره اونجا خوشو بو خالاسته بعد از ماجره هایی که من حالا وقتشو ندارم که بس بکنم تو داخت خوشی زد چون بید تو دیگه این بچه های کدو من هستن ما هم حمید عروسی ندید. پشت دریش میخونه. هر وقت اومدی بی تو. آره. عرض کنم که میگه که بریم الباتی و اونا بعد میگن شیرا میره خونه شکر و ما سال بعدم میره اونها و از مدتی بعد کاشف فعال میاد که خانم شکر اصفهانی خودش دوشیزه است. بعد مهر دوشیزگی باقیه و میگه که من حقیقت اینه که دوستانی که مراجعه می‌کنم خونه‌ی من من به ازمار‌های اینا خوب بلدم مهمون رو کاملاً مخص می‌کنم وقتی این ای کنیم در وقت خواهر تنیزان دارم شبیه خودم رو می‌شستم و من تا الان هیچ مردی به من دستش نریسیم و خصو فوراً اینه ولی بعد دیگه در داستان خصوشینی صحبتی از این شکر نیست حالا مسائل بگذاریم به هر حال شکر هم اسم زن دیگری هست در داستان خصوشیرین هست شیرین هم هست نوش هم به معنی شیرینیه از حیای لب شیرین تو ای کشم نوش خرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست این هم مال این اون وقت نوش به معنی شیرینی مایه شکره که برزن تو آب فوراً غرف آب و عرق میشه دیگه بلیچنش هم آب داره هم عرق عرقم برای برای اینکه نوش درست میشه میفطاری عرق معطل این بیت یه ذره شو خام شد بالغ چشرم که برون من نتر خاک در توست این اینه اون مصرع دهم از غزل بیت عظم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 مننت خاک در تو بر چشم منه خاک همه درهای دیگه زیر مننت این چشم من افتاد آو چشم شم که برو مننت خاک در توست زیر صد مننت اون خاک دری نیست که نیست یعنی همه خاک همه در ها به دلیل اینکه آب چشم منه مرهون خاکی در تو شده همه درهایی دو همه خاک درهایی دو منت و این آب و چشم من و زیر منت این آب و چشم من آب و چشم هست که بر او منت خاک در توست زیر فت منت او خاک دری نیست که نیست همه فهمیدم کمی نوعی پشت همچنین داره رو داره اگر لازمه یک خود دیست دوزیدم اگر نه بدن؟ آه, آه. میگه که آب چشمن عزیز شده چرا؟ برای که منت خاک درید کردو شد این مال مثل نه دیگه این, این حال چیزه دیگه حال تعارف فوقالده است مثل اینکه بگیم قدم به چشمها بذاریم قدم که به چشم نمیذارم خاک در تو من منت خاک در تو رو به چشمم گرفتم چشم من منت پس زیر خاک در توست اون بالا میگه منت خاک درت بر بسری نیست مثل همه چشما منت پسی زیر منت خاک داره. چشم منم میگه چون زیر منت خاک در توست که معشوقی که ذات حقی که کمال مطلقی این تون من منت پذیر او شدم همه اون کسانی بگی منت پذیر منه دوشتم چه او؟ بروشم چه بروشم. از وجودم قدری مامونشان هست که هست اینکه اینقدر فقط از وجود من نامونشانی هست که میشه گفت هست اینقدر ای که نمیشه گفت مرده نمیشه گفت نیست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 وقتی به نظر یهو دیدم خنده‌دار بهم میاد یا, یا فوق‌العاده اغراق میاد میگه چنان ضعیف شدم از قومت من درویش که سایه را نتوانم کشید از پیپیش دیگه <تصفيق> اصلا نمی‌سویامم طراح ببرم یا مثلا میگه که ثابی بر سر بالین من آهسته در بنشین که ترسم باد دامانت از بستر دور من اندازد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 این هست لفم که باید به تکیه کامل خونده بشه یعنی که وجود داره تنوز نمرجی فقط همینقدر یا یعنی از وجود انقدر هست که میتونیم بگیم هنوز هست برنه از ظرف در آنجا اثری نیست نیست تیر در باویه عشق تو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 ولی بهترینش اینه که من رو بینم نه اومده من رو <تصفيق> روباه معروف به این احتیاطکاری و کاری و به همه همون ترس میسی و شیر به عکس که شیر حمله می کن. میگه شیر در بیابان عشق تو تدبیل میشه به روباه آه از این راه به دروه خطر اینیست که می‌گه این را که در اون تمام خطرها بود خطر رو باید بگم که دو معنی داره یکی بزرگی یکی هم خطر و اینا یا یعنی اگه کتاب که لدنه خونده باشن دوستان یا توی دبیرستان به زور تو حلقشون فروت کرده باشن تا هم اول به این بیت برخوردن می‌گه از خطر خیق زد خطر زیرا که سود ده چهل بر نبندت گرد به درصد از خطر بازار کن با. یایی ای از خطر به ترسه که سود ده چهل یعنی سود 400 درصد در ست که خطر یعنی بزرگی از ریسک کردن به وجود کنند از خطر خیزد خطر یعنی از تحمل خطر و ریسک کردنی که آدم میتونه به جایی برسید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 لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم عشق من با خط تو امروزی نیست دیرگاهی که از این جام هلابی مستم از سباق خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پاوی طلب من شستن.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 در بیماغی شمشافت بلند هست همیشه معشوق بلند بلند دوست داشت سقری نیست دوست که خودش هم بلند بوده به روز واقعه تا بکماز سر کنید که میردیم به داق بلند بالا آدم تا خودش قدش بلند نباشه معشوق بلند قد نمیخواد که آدمی که میزنم قدش نختبیر پای خروز باشه معشوق شاسی بلند میخواد برای چی؟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 با کافش محرومی آب ما ببرد یعنی آقه رو این همون شیر در بادیه اشکتو رو باق شد آه از این راه که دروه خطری نیست که نیست نیست که از پرده برون افتد راه باز همون مسئله پوشیدن راز است که مفصل در بارش حد زدن مسلحت نیست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 حاجب رند هم واسه در سنهوزه عرض دادم مجدداً باید روزخونه پشمکال روزه را از سر ببیرم رند در روزگار قطیم برانی آدم های بی سر و پا آدم هیچ لومپنگ لومپن. درست در داستان که وزیر به حقی حقیق می نیمسی که وقتی حسنک سنگسار رو سنگسار قهاشون دارش دادن قهاشون سنگسارش کنن میگه مشت رند را سیم دادن که بیان به حسن ها کنید برای اینکه اون مشتی رند دوران حسن که وزیر تصور کنید امروز فکر کنید که وقتی کسی رو سعیم چه کسانی و حسنی ها سعیم میشن آدم ها اینا رو می گفتن رند هر دوره مولانا رند بیشتر به پهلوان ها و قد داره کشون مولانا رند بیشتر به پهلوان ها و قدرکش ها و لوتی و قیار ها و جوان مردا و اینا میبودن در مناغب الارفین افلاکی که در احوالات مولانا رسیزه صد بار شاد بیشتر کلمه رند به کار رفته به این حافظ تو دیوان خودش بخشون میگه رند مرادش آدمی است مثل خودش رند سوز را با مسلحت بینی چود کار ملت هستم که تدریج تنبول با بود فرصت شمرترید به یه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاری یه جام که خودش میگه رندم آشق و رند و نظربازم و میگویم باش تا بدانی که به چندین هنر آقاست رندی رو جزه هنر خودچند باز میگه این نیست که حافظ را رندی به شد از خاطر که این قاعده قسمت تا روز پاستین باشه بنابراین رند در در دیوان حافظ که اول بار به این معنی به کار رفته از معنی بعد تمتم هم معنی خوب پیدا کرد و اول بار در دیوان حافظه که که این معنی به کار رفته وعده مجلس رندان یعنی مجلس کسانی که امثال حافظ دارش شرکت بسن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 و خورسند به قانه هیچ دیش ت عنده نی نیست ما معالولا الان خوشنود و خورسند و هر دو منی خوشحال میتویدیم خورسند یعنی قانه خوشنودم یعنی راز حافظ میگه در این دنیا اگر عشی با درویش خورسندست یعنی درویش قانه در این دنیا اگر عشی با درویش خورسندست خدا یا منعم گردان به در بیشی یه خوشنود به معنی رازیست خیلی از این نکته که حافظتون تو ناخوشنوده یعنی از تو است، در سواقه‌های وجودت هنری نیست تو من اجازه فرمین که یه و رو دارم نفس می‌زارم می‌ذاریم نفس بازتونم ما پیر زیوارمون در رفتی که هفش در دیگه یزازه بتیم که نفس راضی کنیم در کنیم بیا نه ببند حاصل کارگه خون و مکان این همه نیست باده بیشار که از باب جهان این همینی. نیست از دل و شرف صحبت جانان سردد همه آن هست وگر نید دل و این همینی.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 خوش پیرا سال زمانی که زمان این همه نیست بر لب بحث فنا ای منی این اشتیاق فرصتیدان که ذلح تا به این همه نیست در من سوخته زار نزار، ظاهرا حاجت تذلیل و بیان این همه نیست زاهدی من مشو از بازی غیرت زنها زاهدی من مشو از بازی قیلت زنها زاهدی من مشو از بازی قیلت زنها که ره سومه تا دیر مغان این همه نام نامخافظ رقم نیچ پذیرو ولی پیش زندان رقم سومه زیان این همه نیچ بقی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 صفحه اکلاسی رو متاثر میکنه عکس میگیریم باشه اکسری یه مثلا نبینیمش آهن وقتی که بوداخته شد یعنی رسید درجه حالتش که 600 ما رنگ قرمز میدیم پیش از اون اینو آهنس یا داقه, داقه داقه بهش حس میکنه که این داره انباج ازش متساعد میشه ولی ما نبینیم انباج حسنیم یعنی اون رنگ حسنیم این زیر قرمزی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 اینکه که چشم ما توانایی دیدن یه مقداری هنواج و نورانی رو نداره نه هستن ما نمیدون همینجورم ذهن ما نمیتونه چیزی رو بیرون از زمان و بیرون از مکان تصفره میگیم کوره زمین کی پیدا شد الان کجاست جواب اینه که دور خورشید داره میگرده بین مریخ و زورت فاصله شمه از که چار ملیون ساست ده ملیون صد ملیون چونت... بدون زمان بدون مکان ما چیزی رو نمیتونیم مکان یعنی محل بودن <coughs> کونم یعنی بودن میگه این کارگاه کون و مکان که به یک کلمه به عمر ب... ب... ب... حضرت حب گفت قال له کن خیقون کون یعنی باش از مستر کون به معنی بودن کانه یعنی بود یکونو یعنی خواهد بود کون فیل عمره شد یعنی باش میگه ما به عالم گفتیم کون فیع کون پس بود یک کل عمره کون ساخته شد میگه این کارگاه کون و مکان حاصلش اینقدر چیز نیست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 امیدوارم این کتاب مرساول عباد رو بتونید بخونید اونجا اون حالات رو میگه خود اون پیر که وقتی که شروع کرد به کار شروع کرد به اون احوالات و زیر نظر پیر شروع کرد به رفتن راه و طریقت بعد یه چیزهای جلوب چشمش میبینه انواری میبینه مناظری میبینه چیزهایی میبینه که این نشان رسید و این حال جذبه و حال خلسه پیدیم کن اون حال رو اهل تعبیر میکنن به بادی. میگه افس ارباب معرفت گهی مست خوانندشان و گهی هوشیار از مح و دیر و شاهد و ساوی مزمه و نمدم روح و چشی و زننار ایشان نهفته اسراری است که به ایما گی خوانندز ها طی بری رازشان دانی که همین است در این اسار که یکی هست و هیچ نیست رضو به لا اله الا الله این می اشاره به اون حال جذبه است که عارف یا سالک در راه سلوچ به اون بیرسیم که اصل مطلب اونست از دل و جان شرف صحبت جانان قرار است صحبت یعنی دوستی برای فاقر مصاحبت رو الان میکیم در مصاحبات آقای شعابی رفتیم به فلان جا. یعنی در پایشون ایشون در دوستی در, در حلوی هم خود روابط دوستانه با هم رب ما در زبون فارسی مصاحبه و مصاحبه هر دو یکیه مصاحبه این اینترینو گرفتیم مصاحبت رویعنی دوستی رفاقت این نیست که این خب پارسی درست کردن من نمیگهم غلطی الان به چار میبریم ولی در حصول این هر دون یکیه یا مثلا میگه که یه میگه می که این کار من چه تو شد میگه بیداری پاوزینی مراجعه کنیم یه, یه معنیه من یا آیدوزو فلان از, از سفر اروپا مراجعت کردن مراجعه یه معنی داریم مراجعت یه معنیه دوتاش یکی ما در فارسی دوتا معنی برش به حال صحبت به معنی دوستی و رفاقت و مصاحب هم صاحب که در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 کون هم تو چانزان و فاحبد تو ان اورت فطلت الفض لک ای اورت منم گفتم یا نگفتم اگرم هم هم گفتم دوباره میگم چه چی خاکوی سرم می‌ریزم این یه حدیثی م... حدیث هست از قول خداوند فرموده است که من یه گنجی بودم پنهان دوست داشتم که شناخته بشه مردم رو آفریدم تا شنا این کار رو فرشتگان نمیتونستن بکنی برای اینکه که فرشت عشق نداشت فرشت نداند که چیست قسطه مخواه به خواه جام و شرابی و خاک که آدم شد فرشت جلبه یکر دی دید ملک اش نداشت این آتش که از این غیرات رو بر آدم زد عروفه که خدا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 از دل و جان شرف صحبت جهانان قرار داشت همه آن است و گرمی نی این نیرو یای مجهوله یای مجهول معروف هم که نگفت. ما یار قدیم دو جور موعظ داشتیم و دو جور یک یکیستون میگفتن مجهول و یکیش رو میگفتن معروف وای مجهول یای مجهول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 برای اینکه بسیاری از این کلمات یه خودی یک کس را شیزه رشی شده نه رو با یه می نوشتن دالباه های می نوشتن همونه پس این خونده میشه در حقیقت خونده میشه از دلوجان چرف صحبت جانان قلاز است همه آن هست وگر نه دلوجان این همین هست اما ما امروز چون یه مجهور رو تغفظ نمی کنیم به این صورت می گیم وگر نی همون نی نباید بگیم نی اونست که می زنه اگر دلیل بخواهیم دلیلم هم دارم یک قذلی هست به بند سهدی میگه ای همچو لبان تو شکر نی با آدم چو چشمت پسر نی خب ممکنه من تو اینا, اینا ممکن نیم خون ای همچو لبان تو شکر نی با آدم چو چشمت پسر نی درست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 بله اسم این آقا سراجدین قوامبریه سراجدین قوامبریه تعلیلشین اینه که یه جاهای از شعرش که اگه بکنون قمرین شعر خواهده بنابراین یعینه که این سراجدین کنه ولی بسیار از اینا رو تو کتاب ها دیرگرارشون اون آدم این بعد به سلائه ای به قرائم به این ترتیب ایدیم به هر حال این نیه از بلوجان شرط صحبت جاهنان قراز است. همه آن است، در بعض نسخه هست قراز این هست در, با... در نسخه قرازگینی هست قراز این هست در دوتا نسخه دیم هست همه این است. ولی در نسخه باقی نسخه های خان لبیت حقش نسخه هست. همه هست همه آن است.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 کار کرده و گرد کرده بر یک درخت سنام درخت سیده این خاصیت جذب چرکی به یعنی وقتی مثلا دزنم به سر مثل صابون کت میکنه، کنه من چرکی سر باشی من یادمه که سال ۲۷۷ نفصولم به شیراز وقتی به حمام کارگر همم که آمند دوما بله کنم با گل بشیرم یا با کنار یا با داب گل، گل فرشوره اونم گلیست که چردی رو میکنه و میمالیدن به سر چردیم اون رو میبود و توی شاهنامه هست که میگه که فرستادم دنبال رستن، وقتی سهراب آمده بود کابوس فرستاد دنبال رستن رو گفت که گر گل به سرداری اقنون نشوید دیگه <تصفيق> یعنی گل بود سر تو به شوری نشو. باشه یعنی فوری. مثل اینکه علومی آب در دست داری نخور همونطور طور که گر گل به سرداری از اون گل گل سرش. و همون گل بوده که زن‌های آبستان بیار میکردن میخوردن و بعضی مرد‌ها هم عادت گل خوردن داشتن. و این هم از هزار سال پیش ادامه پیدا کرده تا حتی پدر یکی از رفقای من عادت گل خوردن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 طبیان نصف او میوش هم فراکی ولی مهمتر از همه این است که این درخت در جاهای کم آب هست بسیار قوی میشه و بزرگ و سایه افکن ساعتها روستان جور می‌تونه میتونن استبارد. در جاهایی که بیابونی که آفتاب داغون میکنه آدم در بیابونای فارس اینا زیاد نیست به همین دلیل هم در یکی از وسایلی سرشستم تو هموای اونی گرد و ست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 صدرت المنتحا صدره وقتی که میگن با صدر فرقش اینه این علامات نیست, نیست علامات وحدتی ضرب یعنی زدن ضربه یعنی یه دونه زدن اینوش میگن هیه مره هیه ایست که بر وحدت صدره یعنی یه تک سدره صلمنده یعنی درخت سدر که در انتهای بهشت. درخت دیگری هم بوده به نام توبه که تو اون درختی که مخصوص بهشت دیری زمین نیست. سعدی میگه که خدا هم با به دیدار دوستان ماست کسی بهشت نزد نیت به دوستان ما نآمده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 که درست توبا هست علاوه بر این یه شغلی که هم این توبا داره و اینه که بچه های اندک سالی که شیخار هستند و میمیرن و طبعا چون گناه نکردن میرن به بهشت از درخت توبا شیر میخورن دارتی بزرگ شن این درخت توبا وضعیتای بفصلی داره در چیز در بهشت و توبا اصلاً و تیب و تیب همش منی پاکیزگیست توبا یعنی درخت بسیار پاکیز. ولی به هر حال دوتا درخت ها هیچ قصری و هیچ خانه ای در بهشت نیست که یک چاقل این درخت تو اونجا نباشه با ارز کنم که صدر و دو دوتا درخت بسیار معروف رو بهشتن میگه برای سایه منت اینا رو منت صدر تو واضفه یه سایه مکشکه چه خوشبنگریه ای سرز روان این همه اصلا یک چی غیر از خدا اصلا حساب نیست که تو به حسابش گیری سعدی میگه گوین تمنایی از دوست بکن سعدی از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنا خود شنس فکر بهش تو، فکر سدر سایه یه صدر و توبایی اگه باشه ده نظری منت صدر و توبا زفه یه مکش که چه خوش یه سر بروان این همه نیست ویده بعدی هست دولت آن هست که بی دل افتاد به کنار توی نصحایدی هست بی دل آید به کنار افتت به نظر من خیلی بهتره از دو و چهار و شیش و هشت از ده نسخه معروم دکر دو تا نسخهش یکیش نسخه غزمی است یکیش نسخه دیگه است آیت به کناره واقعی دیگه همه افتت بکنه آیت به که آمدن کاشف از غزت دارده قبلیست یعنی یکیسی باید تصمیم بگیری بیاد بعد بیاد تنی افتادن این طور نیست تصادفی و فوری وقتی که میگه که آما دولت اون که بدون زحمت اگر نه هر کی زحمت بی کی بلاخره مهم نیست میتونه میتونه به دست بیاره حتی میگه اگر بدون زحمت رسید اون اون دولت اینت.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 جن نوش میگن جن برای اینکه میگن موجود که از چشم ها پنهان بهشت رو میگن جنات یا جنان برای اینکه از چشم ها پنهان سفر رو در عربی بهش میگن جنه برای اینکه آدم زیر سفر روی خود شد پنهان جنان یعنی باقه که از نظر ها پنهان یعنی باقه طولتان است که بی خونده لفتد به کنار ورنه با سعی عمل با جنان این همه نمیزن پنج روزی که در این مرحله محلتداری خوش پیاسای زمان که زمان این همه دنچی یعنی پاتو بزن سینه دیوان اشو از پس اول بیا حمزه بغل دست و باد بزن حسگری و باد بزن و پاتم که سینگی و اتهروس. feito. بنی راضی باش به رضای حق. حالت در مقام رضا باش. وقتی هم در مقام رضا باشه و هر بیاد از خیلی قدیم، شاید پیش از... از اسلام افسانه های جنشید و سلیمان با هم قاطی شده قصه های سلیمان رو جنشید نسبت دادن قصه های جنشید رو به سلیمان نسبت دادن گویا اسمشون رو جای هم به کار بردن عرض کنم که سلیمان اولا پادشاه قوم یهود بار کتاب های دینی یهود سلیمان فقط پادشاه و اسلام خلعت پیغمبری هم به او ارزانی داشته و نبی هم هست پیغمبر هم هست در, در اسلام و اون افثانه های در مدرسلیمان که شنگیدید که باد و جن و انس و مرغ و بحش و تیزدن به فرمانش بودند و زبان جالوانان رو میفهمید خود،, خود سلیمان که علم نامنطقه به ما تعلیم دادن یعنی از طرف خدا تعلیم دادن منطقه این نطقه پرندگان هم هر حرف نزده با این های سلیمان و جمشید با هم چیز شده مخلوط شده و به همین ولی چون عبر و باز به فرمان سلیمان بوده او رو به فرمان جمشید هم دانسته و علاوه جمشید در شاهنامه استراحتا هست که به هوا می رخته. میگه به فررکیانی یکی تفت صافت که مایه به دو گوهرندر نشافت که چون خواستی زیب برداشتی، همیدون به عبرندر افراشتی تو خورشید تابان یان هوا نشسته و رو صاحب فرمون رو آفتاب تا بید منتش شد بعد اوگه برای بدون پسی گوهر هست چاندند برای اون روز را روز 9 روز نو،, نو روز روزی بوده است که دیوان تخت جمشید رو برداشتند و به هوا بود و محصول سعد یک جا از تخت جمشید عبر رو اراده میسنن بعد وقت بیچاره چیزی که آدم آتیش میگیره واقعا سوراخی داشته این زندانش که زندان که چی یه حفرهی سوراخی یه سراخی که تبقهی میکردنش مثلا جاهای بدیشه بعد گردن روزن بوده اونجا که همه رابطه این با عالم خارجی و این روزن زندان و خطاب میکنه به اون یه قطعی داره میگه ای روزن زندان دیدگان را نعیم جایی دید بی مهاق و کسوف مها و یعنی سیاه شدن ماه شبه آخر ماه که نیست میگن ماه در مهاقه یعنی روی تاریکش که طرف مست کنید نمیرمشی کسوف هم گرفتن خورشید. بی مهاق و کسوف دادی از آنک شب مرا ماه و روز خورشید.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 نه قدر زندگی هستون بدون هر کنم که میگه گفتم این مست نده جم جام بین هستون خواجه جحافظ از این جام که ای گسروب یا جام جم تعبیرهای دیگه هم داره یکیش همین جام جهانبین یه بارم نی بود جای دیگه توی اون سالها دلطلب جام جم از ما میکرد میگه که گفتم این جام جهانبین به تو کی ای گفت آن روز که این کمند مینا چوام عالم بینم آورده بجای جام جان بازنوش از توی همون ای که بر ما حد خط مسکین نقاب اندازی پیچوندم میگه باده نوش از جام عالم بین که بر او رنگ جام منابرین جام عالم بین مال جام باده نوش از جامع بین که بر اون رنگ جمع شاهد مقصود را از روح نقاب اندار میگه گفتم این محند جمع جامع جهانبین از کو گفت افسوس تا آن دولت بیدار به خود وقت رو مساعد بودنش رو به بیداری تعبیر میکنن چه وقت و چه دولت سهرم دولت بیدار به بالی نام جای دیگری خاجون سرماید به روی ما زن از ساخر گلاهی که خوابا رو بیمه بخت بیدار بخت بیدار یعنی بخت مساعد و موافق و بخت که بختش دیگه در خواب، یعنی بخت موافق و مساعد گفت افسوس که آن دولت بیدار بخو.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 حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر باشد در سراحی با سرش قبای خوشتر از این بر بدن توانت بود دیگه نمیشه کسی اینجوری پاشدی هست قبای خوشتر از این بر بدن توانت بود بدن نیستد از این خوبتر قبای نه ارز کنم که میگه که حدیث سر در سرارو رو با سرکوزدن صحبت حرف زدن نیست سخن عشق نه است که آید به زبان ساغ یا میده رو کتاخ کنید گفت و حافظ چرا و صبر و دریا هنده به دریا افکندن چیزی به معنی صرف نظر کردن کامل از او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 به دریا اندار چه کنم سوزقمهش نیارست نهو نیارست از مصدر یارستن یارستن یارستن یارستن یارستن یارستن پل مازیش اشکالی نداره بچه های دانشی سر کلاسون گفتم یه فوت آب هست پل مازیش یارستم یاراست یارستن از یه توی نیست فعل مضارع میشه یارم یاری یارت یعنی جرأت میکنم جرأت می‌کنه من منفیش که بکنیم میشه نیارم از آورم هم میشه آرام آری آرت منفیش که بکنیم میشه نیارم بنابراین نیارم. نیارم هم به معنی نیاورم میاد هم به معنی جرأت نمی‌کنم اون وقت اننده است که باید به تاسصبح معنی بفهمه که این از مس یارسن یا نه از یا مستره آوردن. چه کند سوز خش نیار از نه این نه تا آخر به صورت ممسری ببینید دو تا در فارسی که میاد مثل همه زبون هندو اروپایی هم همین جوره. دو تا فیل که گ سرن میاد دو گمیش مستره نیار نه از نهفت دل ماضی نیست یعنی نیارست نهفتن نون مستری شفته خب این یکی رو فقط میتونیم بخونیم ازگمان نمیتونیم برسیم چیز بکنیم اینم قذل فشنگی خیلی قصدم دارم که چرچنگ کلیمی حرف بزنم ولی خب حالا فعلا میخونیمش تا ببینیم بخونده ببینیم هم توکه آه نه، اون هم تغثیر اینکش که ده، نه، بود نه، و نه، با عکس کارش، بردره نصفه های، نصفه های معتول آنطور که پریشهه که دوش از بر ما رفت آیا چه خطایی که از خطا رفت نارفت مرا از نظران نور جهان بین که بابت ما نیست که از دیده که برشم نرفت از گذار آتشه که آن دود که از صورت جگر بر سر ما رفت دوگ از رخه او از چشمه چشمم سیلا به سرش که آمده و از سای پساری که آمد قمه هجران در درست بماندیم که از درست سوارم یه به سارش دعا باز تبان یا امیش که خوندم همه در کار دعا رم چه بندیم که نبله نه اینجا در خیلی چه کوشیم چو از کعب سفا رفت کعب درستاره میگو قبیل سر هستن چو مراضی تیهاست که زنگ سوز قانون شفا رفت ای دوست به پرسیدن حافظ قدمین زانتیش که بودن که از دار فنا رفت اینجا باز بازیگری عظیم با الفاظ و آوردن الفاظ به دومنی و سمنی دو و, و این ناتوباتی که حافظی می هست از اون اول آن ترک فری که دوش از بر ما رفت ترک معشوق بارها گفتنی در عدب خورس و گفتم که ترک اصلا از نظر نژادی هم وقتی در ادب فارسی گفته میشه مراد اون چسباد می یعنی مردم آسیای شرقی آسیای میانه است و اینا رو میگرفتن مصرات... که می اومدن مثلا قبایل ترکمن مهاجرت میکردن دلیلش اینه که اونجا بیاجون سنجار و شرایط سختیه می طرف نواحی ایران و خراسان اینا که بفور نعمت بوده می اومدن چه از اون بالاترها از جاهای که اسلام نرفته بوده، میرفتن مسلمین و اینا رو دستی دسته گله گله زن و بچه و دختر و, و پیسر مردم می گرفتن و هنشان بازار می توفتن هر کسی معشوق می خواست می بازار ستان بده این که خود بخره عرصه خب خیلی قبیهه که آدم مثل گوستن تو بازار بفروشن اما خب اگه رسم روزگار این باشه که باید این صدمه اینقدر تنهایی باید هم غلطه آمد دکتا، اگر رس می روز قلم حالا ببخشون ما که این حالا نیست، این حالا حفظ می دهد که باید هم اینا رو تعلیم می دهدن، درست می دهدن، مدت ها جیسون می ساز، آواز، ساخنگری، شطرنج باختن، تمام وسائل تفریش دیپ حتی گاهی مقدمات و علوم مختلف رو همه به اینها می آموختن و بسیاری از شاهان، بسیاری از خلفا، مادرشون کنید و گاهی اون کسی که میرد این خانم میخرید برندش میابرد می می می طوری دل به مهرمی میبست که اصلا شکیب نداشت و خانم تمام زندگی دستا قبضه میکرد تا اون برد بیرون توفقم عشق آمد و غمهای دیگر پاک بود سوزنی با اگر کار برای آراد خواهد روش تورک اگرم راجع به تربیت اینا و این مسائل اطلاعاتی بخواید به کتاب هزار یک چپ مراجعه کنید خیلی کنیزی هست که میگی که ببر من بازار و ببود ده هزار دینار کم تر نکنید ده هزار نسخال تلاه هم یادتون فرای گفتن که این گرونه و اینا بگو که این خانم بشونین هر علمی که شما به نظرتون میاد، علمای در یک میاریم و این خانم مباعثه کنیم اگر چی کن. داد اون علما رو ده هزار دینا رو بید. اگر نه بید. بعد میارن دون سانیاست پس اساس البته قصصه بعد یه ما رو آوردن این عالم فقه میاد اصول میاد شطرنج باز میاد نمی دونم موسیقی میاد هر میاد خانوم همه اینا رو سوس می کنم که خفن کنم که این این ترک اولا اون ترک مال کجاست مال خطا آن ترک فرید چهره که دوشاد بر ما رفت آیا چه خطا دید که از راه خطا را؟ بینید بعد پری کارش پنهان شدنه بینید دل رو میبره و بعد از آدمی میگریزه نهان میشه دل از من برد و روی از من نهان کرد حافظ یکه میگه بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچهی شیوه پریدانه یعنی گرفت ببره و رو کنه دل از من برد و از من نهان کرد خدا را باکه این بازی تمام کرد